در جام طرب باده گل رنگ خوش است، با نقمه اود و چنگ خوش است، زاهد که خبر ندارد از جام شراب، دور از بر ما هزار فرسنگ خوش است. دوران جهان بیمه و ساغی خوش نیست، ای زمزمه نای عراقی خوش نیست، چند در احوال جهان مینگرم؟ حاصل همه اشرت است و باقی خوش نیست. دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار خدا خواهی رفت، میخور که ندانی از کجا آمده ای، خوش باش ندانی که کجا خواهی رفت. رفتن چو حقیقت است پس بودن چیست، راه طمع محال پیمودن چیست، جایی که به مسلحت مخواهند گذاشت، بارغز سفر بودن و آسودن چیست؟